رهلت امام خمینی برای مردم بسیار غمنگیز بود. با رفتن ایشان، ایران در ماتم و اندوه فرو رفت. من هم درک می کنم که از دست دادن امام خمینی برای مردم ایران سخت بود. آنها رهبری بسیار محبوب را از دست دادند. همینطور است. پس از انقلاب مردم و امام روزهای تلخوشیرین را در کنار هم گذراندند. تا آنجا که من میدانم، امام یک دهه پس از پیروزی انقلاب نیز در کنار مردم بوده. بله، با وجود ایشان جامعه ایران بسیار متحول شد. حکومت ایران در زمان ایشان چگونه بود؟ در آن زمان، اداره کشور بزرگی مثل ایران، که در آن انقلاب شده بود کار آسانی نبود امام با هوشمندی وابستگی ایران به بیگانگان را قطع کرد و حکومتی مستقل و آزاد را پای ریزی کرد درست است تغییر یک حکومت و ایجاد نظامی با ارزش‌های جدید بسیار دشوار است حدود یک سال و نیم پس از پیروزی انقلاب ارتش صدام به ایران حمله کرد و جنگی را آغاز کرد که هشت سال طول کشید. پس امام خمینی رهبری بزرگ و شجاع بود که در آن شرایط سخت ایران را به خوبی اداره کرد. البته ایشان رهبری هوشیار و مانند کوه محکم و استوار بود. به همین دلیل مردم ایران از رهلت ایشان بسیار اندوهناک شدند. بله میلیون نفر در مراسم تشییع ایشان شرکت کردند و با اشک و اندوه امام را به خاک سپردند.